داستان به طور کلی در سه کلمه این است که میگه سی شب متوالی ما همون ترتیبو داشتیم اول شب و عبر میامد و پاک میامد ترتیبات می ما بودیم و می کردیم و عشق می کردیم آخر شبم هم دست امونو می داشت دست کنیزکیو می رفتیم و دوباره پردام همون ترتیب سی شب ادامه این کل مطلبی در وسطش یک جا می که من زیاد طلبی کردم تازه همینم از سر من زیاد بود اینکه بود ولی من باز دنبال چیز زیادتری جستم و نتیجه اینکه بعد اون گرفتاری پیدا شد شب دوبام میگه عبسون طلبی رو گذاشتمش، میشه چون گران دیدمش در آن بازی یعنی دیدم فعلا او زاب و او در این بازی گرانی میکنه سنگینه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 شروع کردم به سرکشی چون دگر باره طور که دلکش من درجه گردی، جوش آتش من کرد از آن لوطتان یکی را ساز کاید و آتش هم که من نزدیک الان که یه وقت گردن کشی کنم و یه کار خودی از سر بزنه صدا کرد یه دوشیزه ای رو ما رو داد دستش که برای آتش ما رو بنشونه کرد از آن لغتان یکی را ساز قاید و آتش هم نشانت باز یاری الحق چنان که دل خواهد میگه دل همه چیز مقتدل خواهد خوشدلان شد که با یاری گرب کاشکی چنان باری خوشاب حالی کسی یاری داشته باشه و اگر قرار یاری داشته باشه کاشکی به همین تحدیب یعنی همه چیزش معتدل باشه. رفتم اون شب چنان که عادت بود و اون هم دل زیادت بود. بیشترم بهش خوش گذشته. تاگه روز قند میخوردم با پری دستبند می‌کردم، روز چون جامع کرد گازر شوکه. گازر رخشو رو میگفتن قدیم رفتار میدازن. یک کسی شغلش بود. هم که حالا میخوش رو اینا هست تا اون وقت این ماشینا وسایلی و که نبود میوردن لب رودخونه لباس ها رو خیست میکردن یه مقداری هم درش چوبک و اشنان رو میریختن و یک چوبی داشتن به نام کدین که این رو بعد از اینکه خوب اینا رو با چوبک اینا خیست میکردن بعد میذاشتن جامعه ها رو روی هم انقدر بعد با اون چوب نیتکو میدنن زیرش هم سنگ بود و معتقد که به این ترتیب اون چرک که خیز خورده از جامعه میره بیرن یا اینکه که دست دسته میزدن به سنگ برای که این چرکش بیاد بیرون، و بعد سفید میشد وقت هم دیگه حد یه روزی دو تا پیرند یا روزی پیرند که عوض نمی کردن اینقدر بود که دیگه رنگش تغییر میکرد دازم میزن دست گازو. <تصفيق> اینی که میگه که روز چون جامع کرد گازور شد، یعنی وقتی روشن شد روز رنگ رزوار شب شکست سبوی یعنی سبوی رو شب شکست یعنی روز شد. و میگه که شب مثل رنگ رزان سبوی خودش شکست یعنی رنگی دیدر کار نبود روشن شد هوا. روز چون جامعه کرد، گاز شوی، رنگ رزبار، شب چکه از سبوی، آن همه رنگهای دیده فریب دور گشت از بساطه زینه خوزیب همین رنگ من نشسته به زیر سربانی، تارق از همده میگو هم در تمام منظر شب در که چون شبا باز میخورم با بوتان چین و تراز یکی از شهر های حسین که من یادم نبود اونجا بگم طرازی زلف ترکی برافرم به کمر دلنوازی نوازی به جیگر گه خورم با شکر جامی گه بر ز گلروخی کام میگه خوشمختان شب که میرسید رسید میگه این آرزوی ما براورده میشد درست بود چون شب آمد قرص محیا بود چند گاه این چنین به رود و به می هر شب هم ایش بود پیدا میگه هر شب مدت ها و همین تحتیب بعض من بود اول شب نظارگاه هم نور آخر شب هم آشیان هم هو روز بودم به باغ و شب به بشت خاک مشکین و خانه زرین پشت بودم اقلیم خوشدلی را شاه میگه من شاه مملکت خوشدلی بودم ای از این بهتر چی میخوادن؟ روز و آفتاب و شب و ماه هیچ کامینه نه نبود مرا میگه هیچ مرادی وجود نداشت و هم نداشته همه چی داشته منطقه بختم بخت من بود کان نمود مرا یعنی بخت بد من بود که این بدبختی رو من نشون داد چون در آن نعمتم نبود سپاس دیگه چون باز افزون تلبی کردم و سپاس اون نعمت رو ندونشتم حق نعمت زیاد شد زفیاس زی حق نعمت بیش از اندازه شد برق از هر حرف خرمی شستم که از زیادت زیادتی جست. میگه باید که خیلی زیاده من بود اون چیزا عوض اینکه اینه بگم به خانه بشم به این اومدم بازم زیادتر بخوام برق از حرف خرمی شستم که از زیادت زیادتی شستم چون به سی شب رسید بعده ماه سی شب با هم بودیم شب جهان برسه تارکت سیاه هم بر این طره سراغی سپر، طره ماه درکشید به مهر وصف فرا رسیدن شبه و بادی که آمد ایزان پیش تازه کردن تازه یه پیش میگه باز هم عبر اومد و باز هم باد اومد باز هم ترتیبی داد و شورشی باز در جهان افتاد بانگ زیبر بر آسمان افتاد بان کنیزان در آستینشینه سیب در دست و نار در سینه نار در سینه استانشونه. سیب سیبم شاید کنایه از زنختانشون باشه چون زنختار مشهور رو به سیب تشبیه می‌کنن سیب در... یا اینکه سیب دست خورده اردوش میشه سیب در دست و نار در سینه آمدندان سریر بنهادن و همون ترتیب های پیش تخت و گذاشتند و حلقه بستند و حلق بکشادن این چون هم به آواز کنده آمدان ماه آفتاب نشان اون بانوی بانوان در برف کنده زلف مشتشان شامها پیش و پس به عادت خیش پس رها خون که شام باشد پیش این خیلی قشنگ میگه به عادت پشت سر و پیش روی خانوم شم ها می آوردن میگه گوه پشت سر کن که شم پیش محصول نیست که شم اصلی اون بانوست با هزاران هزار زینت و ناز بر سر بزگاه خود رو باز. مطربان پرده را نوا بستن پرده یه منیش آهنگ موسیقی مطربان پرده به بزن راه هجاز که از این راه پیشود یارو و یاد نکند یعنی کوکشو عوض ما را حافظ اون زهایی هم که دسته تار و سه‌تار و سازهای مزرابی بسته است اونها را هم بهش میگن پرده مطربان پرده را نوابستان نوام ونی آهنگ باز مطربان پرده را نوابستان مشغول شدن به کار زدن و هرده داران به کار بنشستن باز پرده دارم به نظر من جنی موسیقی دارم. کسانی که اهل پرده موسیقی. ساقیان صرف ارقوانی رنگ راست کردن بر ترنم چند. صرف یه می لعل داریم. یه می عقیق داریم و یه دوردی که کم لعل و اینقدر بزنم توی خمره بمونه. ذرات بسیار ریزی بوده اینا تنشیمش. و اینا ماها طول میکشیم. و گاهی فرصت نداشتن انقدر بزنن. اینه که اول اون قسمت بالای خم انقدرش صاف صاف میشد زیرش یه کمی تار بوده اون بالایی رو میگن می لعل یعنی کاملا شفاق دوبامین رو می می عقیق برای اینکه عقیق تار شفاف نیست اون می لعل و صرف هم بهش میگن مثل کمال است میه صرف وحدت کسی نوش کرد که دنیا و اقواه فرام نوش کرد مه صرف وحدت مه یعنی اون شراب کاملاً ساخ شده که هیچی غیر از شراب درش نیست ساغیان صرف ارقوانی رنگ راست کردن بر ترانم چنگ همراه نقمه ساز اونا میه صرف رو به گردش در آوردن در این موقع شاه شکر لبان چنان فرمود کابری دان حریف ما را زود بانوی بانوان هم گفتیم دوست ما کجاست پیداش نیست برش در این بیدیمش باز خوبان به ناز بردندن به خداوند خود سفردندن خداوند این صاحب مالک یکی ما رو دست صاحب این چون مرادیت مهربان برقاست کرد بر دست راست راست راست کردن جای یعنی آماده کردن و فراهم کردن اصلا راست کردن بنی آماده کردن میگه که بر دست راست جا برای من فراهان کرد نزدیکترین جا از نظر عرج و غرب و نظر نزدیکی به سلطان دست راستش بود بعد دست چپش یعنی وزیری که دست راست پادشان نمیشه سه احترام و عزت چینه از وزیر که سمت چرپی بیشتری پیشت از اون داد که میگه خانومم در کمال مهربانی برنش رو دست راست خود داد یعنی دیگه بهترین جای ممکن رو داد به من خدمتش کردم و نشستم چهار. خدمت کردن و انی تعظیم کردم خدمت کردم یعنی بهش تعظیم کردم خدمتش کردم و نشستم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 فشان گشت کام های صدف اولا یکی از جامهایی که توش نینی خوردن خود صدف سدف صدف گوشماهی رو توش شراب بکردن خاقانی میگه ساقی به حوش باشد. که جام صدف دهی بحری دهی که توه غم از جا برفت کند یک گوشماهی از همه کس مرا. تا بحرسی نجیفه سودا برکن دوبام این که میگه که دریا دریاکف آمدن و جامهای صدفی که داشتن توش پر از گور بود یعنی پر از نیفی من دگر باره گشت باله همست یه مفتیلمون یاد هندستون کرد رسان، ظلفه او چون رسند گرفته بده باز دیوانم از رسند رستند من دیوانه را رسند, رسند. دیب هایی که در درون داشتم اینا از بند و پارک کردن و اومدم شروع کردم زیاد کردن از رو مرد بی سبر شده و افضان طلب و بعد که نظام خودشم در ذهن حکارت گاهی میگه که من چه ابلهی کردم، اینجا بز داشتم، و ای داشتم، عشی داشتم، اش اشترات اش داشتم، در اثر افضان طلبی همه اینا رو از دست کدن، این میگه ولی همین مسئله این است که اون چه اورد آرزوی آدمی است فراهم اینجا براش میگن این یکی استثناء درست میره سر همون یکی این طبع بشری نیست که گفتم براتون که این شیادایی که مدعی میشن که کیمیا درست میکنن و میگردن آدمایی که بیماری طمع دامنشون گرفته اینا میبینن که پولبلی دارن میان اینا رو دست میزنن رو نقطه زرفشون رو نفسشون رو که بله ما کیمیا ولدیم و نمیدونم فلان رو یه مثل خاله ایک سیر نمیدونم بزنیم به پنجا من مثل تلاب میشه و چه میشه و اینا میشینن اونجا رو میکنن به دادن صورت جنسایی که دست نمیاد که برو اینو رو به خرامون رو تاییه کنیم و از تهیه رو تاییه و گاهی هم چیزهایی که غیر ممکنه اصلا اصلا که کنیم که برام بیاد. و گیر زرده اصلا گیر سو وجود داره. مثلا میگه تلق رو حل کن. طلق یه سنگ طبیعی کوهستانی خروجی است که میکا بهش میگن در اصطلاح زمین شناسی و سیلیس رو قابل حل میگه اگه تلق رو حل کردی یکی از عناصر مهم شیمیات دستت. یا اگه گیر سور آوردی که بعضیگاه شاعران دست میاندازن منجی که ترمزی در حجبه یه آدمی میکه که گوگرد سرخ خواست من سبز من پریار سبز من یعنی محشوق من محشوق من پیلود از من گوگرد سرخ خواست گوگرد سرخ خواسته من سبز من پریار امروز اگر نیافتم روی زردم ای. گفتم هزار شد که گوگرد سرخ خواست یعنی نان خاجه خواستی از من چکردن یا مثلا یه شهرگی در مورد حل گفتی که معنی که حل تلق پلول غنات میگه که شنیدم که در روزگار قدیم شدی سنگ در دست ابدار سیم من پندارکین قول معقول نیست چون قانه شدی سنگ و سیم هدی گدارا گدار کند یک کرم سیم سیر فریدون ز ملک عجم نیم سیر بخفتن شب روستایی و جفت به زوزی که سلطان در ایمان نخف اینا این قبیل آدم ها رو پیدا می کنند بعد می دوشنشون رو شروع می کنند اونجا چادری میزنن زنند و پولای باباره رو خورند و می دنبال نخدسی و بعد به بلاخره و از اینکه یه مدتی و کافی این دوشیدن بعد می که خب حالا عمل بهش می حالا عمل شروع می کنیم بعد می که خوب شروع می کنند این شاید بعد میاره رو تا یک رو تیگه کردن خب شروع میکنیم و این تو کار احساسات ایرپانی اینا هم هست یعنی معتقدن که نیت و این واضحی هم در اشتخالت داره و متوسط میشه این آزی کاران باید. ولی اساس قضیه تمهه و پول آسون به دست بردن بعد یارو که میتونه که اینو تمام اینو میگه که خب ما شروع میکنیم ولی مواظب باشید که در زمن عمل گزمجه نوید به خاطرتون دید یا ما فرض کن که گوتان دو ساله نباید به خموش شدی که یه هر کاری میکنه بابا که این از کن نمیشه عمل شروع میکنن عمل به نتیجه نمیرسه بعد بگه لابد شما چیز کردیم میگه حالا این حالت روانی در چیز هست بابا این همه زن خوشگل هست همه چی هست چسبیده که اون بابا که اون نه این دقیقا و سر همین زندگیشو به بعد میده این حالت رو داریم یکی باز با اینکه همه وسائل محیا بود من چسبیده بودم که خود بابا رو در اختیار بگیرم و او هم نمیگفت نه نم. میگو آقا زب کن آخه این داستان اینجاست میگه انکبوتی شد همز تننازی وانشب با رفتن هم رفن بازی تنز یکی یعنی مسخره کردن رو حرض کنم که ریشخنده در حقیقا یکی دیگه هم یعنی به ناز راه رفتن و خلاصه لوندی و دلبری کردن دلبر تناز که میگرد انکبوت که میدونید که روی اون چیزهاش خیلی به سرعت حرکت میکنه و تارهایی که میتنه دایره شکل شبکه های, های دایره است و دورش دایره و به محض این در هر جای این شبکه وسیع پای یه مگستی پشه ای چیزی به یکی از این تارها بخوره انکبود که اون وسط پنهان کرده خودشو به سرعت برق خودشو میرسونه اونجا و روی این چیزها و و کلک باور میکنید رسنبازی وانیه بندبازیه که ما بندبازی میگذیم بند همون رسن دیگه تا همین که تو سیرکا صورت بسیار پیشرفته شو میکنن سابق میکردن با وسائل بسیار ابتدایی، یه دو چوب بیزشتن و تناب میکشتن و بعد بابا میاد روش راه میرفت از این کارا، این کاره رو میگفتن رسنبازی که مهارت و ورزدگی کافی هم میخواست البته بیت قبلم هست چون رسن میاد خیلی نظامی و قاعده تدایی ممانی رو تدایی ممانی خیلی کار میکنه نظامی هم همین میخواد بگه که من یه دفعه حواس در تا گرفت میگه باز دیوانم از رسن رستن دیوان از تنافی که پیچی بهشون بهشون بعد رسن که میاد این لفظ رسن میگه دنبال میکن باز دیوانم از رسن رسند من دیوانه را دیوانه جد اولش همون دیبه دیوانه یعنی دیو دیده و دیو زده کسی که دیب در اون تصرف کرده میدونی که قدیم سرعی ها و دیوانه ها یعنی کسانی که بیماره روانی داشتن مردم میدن که اینو چه سرونه برنشون سالمه. قوی رو گردن کلوفت و اشتهای خوب بود بعضی خوب بدن خوب و هیچ عیب و نقصی نداره فکر میکردن که بنابراین این شیطون تو جسم شخصه و دیو درش تصرف کرد به همین دلیلم یا زنجیرشون میکردن و یا میزدنشون خیلی شدید و یا ازاهم و تلسمات واسه درست میکردن و دعا میگرفتن و فکر اینکه این حقیقتن یه بیماریه و باید دوا کردیم این رو نبودن این به همین دلیل هم هستیم میگهن دیبونه یعنی دیو درش تحصیل بذاشته باز دیوانم از رسن رستن من دیوانه را رستن دیوانه را میبستنش دیگه مثلا دیوانه های که دیوانه زنجیری بهش میگفتن حافظ میگه که من دیوانه تو زلفتو رهامی کردم هیچ لایفترم از حرفه نه. انکبوتی شدم مثل تنازی وانشب آموختم بازی. با اون رسنهایی که دیوان ازش رسته بود شیفتم از مستر شیفتن ما الان مستره به کار نمیبریم فقط شیفتش رو کار نمیبریم من شیفته وانیه باله و و مفتون چیزی شده و ولی این فعله مازیشه شیفتم شیفتی شیفت و من مزارش نمیدونم چی میشه شیفتم یعنی شیفته شدم چون خریه که جو خوین برای گوشنه این که بید. یا چون سرعی که ماه نو خویند سر به معنی قش و حمله فرنگی بهش میگنه ای و این الان دیگه تمام جزئیات وضعش رو خبر دارند که انشه تخلیه الکتریکی در مغز جرقه های مغز اصلا تمام کار دستباه های وطن یه مددار زیادی با شفای ایلکتریکیه یعنی قلب هر ضربهی که میزنه اون عصب محرک قلب یه شک میده که این مثلا یک صد هزار همه یه چیز خیلی است ولی وجود داره و این شکو که میده قلب میزنه باقی جهان هم همیتون بعد گاهی این شک این تخلیه جیرقه زدن در محض که اتفاق میفته باعث بیخواری گاهی مثلا یک لحظه گاهی هم تلی مفصلتر میشه اکثر کسانی که سردارن ممکنی که اصلا ندونن و بعد یه وقت مینی که مثلا پشت فرمون میشه سه ثانیه از خودش بیخود میشه میزنه میزنه جایی و الان میدونن علت این رو و دواش هم میدونن دواش یه داروی هست خواباوره به شدت سم باربیتوریک بهش میگن باربیتوریک ها لومینال و گاردنال و... نه نه اینا. لومینال دوای خودکشی هم هست برس خواب هم هست 40 سانتی گرمش دوز مرتله یعنی میکشه ولی سرعی هست که عادت کرده کم کم روزی دو گرم مثلا لومینال میکشه و نخوابش میبره اولی که بهش میدن، مثلا ده سانت بهش میدن، این میخوا به صبح تا بعد کم کم عادت میکنه و اینو انقدر افزایش میدن تا اون حمله سر دیگه تجدید نشه بعد روی همون نگهش میدنه و این آدم سرعی ای باید مرتب اینو بخورده بسیار آدمای سالم هستن، آدمای خیلی نسابی هستن آدمایی که کارهای خیلی مهم کردن کارهای علمی ما تو همکارمون داشتیم در, در دانشگاه داشتیم این سر داشت و لومینال میخورد و مثل آدم ساله دقیقاً کارش میکرد از همرای سر هم در امام و به هر جهت لومینال دواشه و بعض از این که اون عادت کرد همونجور که هر سم میرو بدن که عادت کرد یک کشنده نیست به تریاک بعضی عادت میکنن ببار زیادشون میخورن در حالی که بند یک سدوم ممکنی آدم سالمون بکشه این لومینال هم همطوره اینو میدن به اون اندازه که دو طور میده بعد باید, باید این مرتب اینو بخور تا از اینو بخوره و همه سرم نیست ولی قدیم این رو مثل همه ی انباع دیبونگی دیگه به دیب و این حرفا نسبت میدنن یک دوم این که به ماه و به نو شدن ماه نسبت میدن میگفتن دیوانه کسی که جنون ادواری داره با دیدن هلال ممکن جنونش taj بشه اینکه ماه روی زمین تاثیر داره یا نداره بنده نمیدونم کار من نیست و رشته من نیست اطلاع ندارم اما یه چیزایی هست که تاکید اولا جازبه ماه که در جدرومت اینا تحصیل داره که یکی از چیزای خیلی مهم این است که میوه‌هایی که رنگ میاندیزی میگن بیشتر شبه که ماه رنگ میاندیزی معتقد بودن که این اثر نور ماه باز قدیم معتقد بودن که کتان که کتان نوعی گیاهی که میدونی که تو خوشم یه چیز شبیه ارزند که دانه روغنیه روغن زیادش می‌گیره. شادونه اینا کتون بهش میگن و یکی از دانه هایی که به قناری میدن میخوره همین تخمکتون میدن میخوره میگن براش بود و حال این رو که میکرند یه علیاف بسیار که ظریفی داره که اون انواع خیلی خیلی خوبش بسیار بسیار گران بوده و به قیمت پاشاهای ابریشمی یا گرونتر بهترینش هم در مصر عمل میامده جامعه کتانی رو بهش میگن قصب و قاف و ساد قصب مصری بهترین نوع قصب بعد معتقد بودن کتان در ماتاق میپوسه نظامی خودش میگه در خصوصی شیدیم نه میگه ز ماه هشتصد را رخ نیابی چون ماهش رخنهی بر روح نیاب گویا مسلم است یعنی عادت زنانه خانم ها بر طبق ماه قمری نه بر سال شمسی به همین دلیل از قدیم حکم می که که شدن ماه در جنون حدواری تاثیر داشته و نظامی که از کسانیست که خیلی این حرف رو یه جدیگه در داستانه پس که ملک چون جلوه دلخواه نو دی تو گفتی دیو دیده ماه نو دید دیو دیده یعنی دیوانه ماه نو دیده یعنی دیوانه دیش چون دیوانه ماه نو برا در آن مستی آن دیوانگی خوب شیفتم چون خری که جو بیند یا چون سر که ماه نو بیند لرز لرزان چو دوزد گنج است در کمرگاه او کشیدم درست در حال دیخودی و در حالی که از حال تدیه خارج دست رو اندافتم به کمر او و کوشش کردم که او رو در اختیار ده. دست بر سیم ساده میسودم سیم ساده کنایه از بدن اون ماهروس دست بر سیم ساده میسودم دخت میگشت و سوست میبودم او مقاومت میکرد و من هم از مستی و از قلبه میل و آرزو صوت شده میگه خانوم باز به مهربانی و با نرمخویی و بدون خشونت سعی کرد که من از این وضع مرصرف کنم چون چنان دید ماه زیبا چه دست بر دست من نهاد برم دست شودش شو رو دست